افسونه افسانه به نام خدا سلام افسانه ها بخشی از ادبیات شفاهی و میراث فرهنگی ارزشمندند و حکایت از امیدها، آرزوها، شکستها، پیروزیها و به طور کلی افکار یک ملت دارند. عزیزان، سرزمین مصر یکی از کوهندترین و شگفتانگیزترین تمدنهای جهان قدیم در اکتشافات. باستانشناسان این سرزمین کتابخانه‌ای پیدا کردن که تاریخ آنها به دو هزار سال قبل از میلاد میرسه. کتابهای این کتابخانه ها تومار پیچیده ای از پاپیروس هستند که در درون کوزه قرار دارند و در طبقات مختلف کتابخانه ها چیده شدند، در این کتاب ها علاوه بر مطالب مختلف علمی و تاریخی قصه ها و افسانه های بسیاری وجود دارد که به زبانی ساده و شیرین نوشته شدند و ما را با فرهنگ و آداب و رسوم مصری های قدیم آشنا می کنند. امشب قصد داریم افسانه دادخواهی مرد کشاورز در سرزمین کهان مصر را تقدیمتون تون کنیم. برگرفته از کتاب داستانهای مصر باستان نوشته مارگریت دیوت امیدوارم از شنیدن این افسانه زیبا و آموز لذت ببرید. سگاری در دشت نمک در حوالی سرزمین گرم و خشک مصر مردی کشاورزی به نام کنپو با زن و فرزندانش زندگی می کرد مرد که تنها ناناور خانواده بود کالاهای دشت نمک و به شهر می برد و اونا رو با گندم و ارزن مبادله می کرد مرد کشاورز که مدتها بود به شهر نرفته بود از همسرش خواست که به انبار قلات بره و محصول امسال هر هرچه هست پیمانه کنه زن به انبار رفت و چند دقیقه بعد در حالی که نفس نفس میزد به نزد همسرش برگشت ای مرد فقط هشت پیمانه باقی مونده این مقدار خیلی کمه دو سه روز دیگه تموم میشه نگران نباش زن چهار پیمونه رو برا بچهها نگهدار و با چهار پیمونه دیگه نونی برای توشه راه من بپس میخوای به شهر بری کی همین فردا میرم مصر رو با فروش کاله ها سرمایه به دست میارم و برمیکرم آمیدوارم زن که دلش قرص شده بود برای توشه راه همسرش چند قرص نان پخت و مرد هم لوازم سفر را آماده کرد شب به آرامی بر پهنای دشت نمک جای گرفت قردای اون شب نسیم ملایم و خنکی در حال وزیدن بود که مرد کشاورز آماده سفر شد. خرجین اولاخهایی که داشت از نیر، چرم، نمک و تخم آفتاب گردان، پوست گرد، بلدرچین، انگور و عقیق یمانی پر کرد و از زن و فرزندانش هم خداحافظی کرد و به طرف مصر به راه افتاد. خوالی ظهر مرد کشاورز خسته و گرسنه به کنار رود نیل رسید و لحظه ای استراحت کرد در کنار رود نیل مرد کوتاه قامتی با صورتی گرد و چشمانی درشت ایستاده بود و به مرد کشاورز و که زیر بار سنگین کالا کمر خم کرده بودند چشم دخته بود مرد کوتاه قامت که از دیدن اون همه کالا به حیجان آمده بود آهی از حسرت کشید و زیر لب گفت داشت من هم به اندازه ایمت کالا داشتم باید باید یه جوری تموم کالاشا چنگیش دار بیارم ولی ولی چجوری؟ مرد کجاو قامد به فکر فرو رفت و بالاخره نقشه‌ای به ذهنش خطور کرد و با سرعت به طرف خانهاش که در کنار جادهی تنگ و باریکی بود به راه افتاد این جاده تنگ و باریک که تنها گذرگاه در اون حوالی بود یک طرفش گندمزار بود و طرف دیگه اون خاکریز قرار داشت از طرف این مرد کشاورز بعد از خوردن مقداری قرص نان و رفع خستگی دوباره به راهش ادامه داد و به جاده تنگ و باریک نزدیک شد مرد کوتاه آمد که از دور منتظر اومدن مرد کشاورز و الاقهایش بود، با دیدن اونها فرصت و قنیمت شمرد و تک پارچه کتانی و که قبلا برای منظور خاص خود آماده کرده بود، بر سرتاسر سر جاده تنگ و باریک کشید و خودش هم در گوشه ای به کمی نشست. در همین لحظه، مرد کشاورز و الاقهایش که زیر سنگینی بار به سختی حرکت می کردند، به ابتدای جاده تنگ و باریک رسیدند مردی کشاورز با اولین قدمی که به جلو گذاشت فریاد مرد کوتاه آمد از دور بلند شد مباسب باش اولاخت پارچی کتانو منو لگد کوک نکنم این پارچه اینجا چی کار میکنه؟ این پارچه چیه اینجا کشدی؟ این پارچه کتانو په کردم که خوشک بشه ممثبه اولانگاهات باشونه کسی فشت نکنن ولی تو باید بدونی پنگ کردن این پارچه توی جادهی که همگانی و به مردم تعلق داره کار درست نیست این کار به تو امثال تو هیچ رمتی نداره من پارچه ما چه دلم بخواد بهم میکنم ولی این جاده عمومیه محل گذره همه است حق مردمه تو نمیخواد سنگ مردم رو به تو؟ تو با این حال آقا چجوری میخوند از اینجا رد بشین هم؟ نه ترس من جوری رد میشم که هیچ صدمه ای به پارچه کتانه تو وارد نشه او به... برم اینطور باشه مرد کشاورز با دقت و احتیاط اولاغاشو به ردیف پشت سر همدیگه قرار داد و اونا رو به طرف گندمزار کنار جاده تنگو باریک هدایت کرد این کار باعث عصبانیت مرد کوتاه قامت شد آها! داری چی کار مگه گندمزار من جاده است که اولاغاتو به اون طرف میلونی؟ آخه آخه میگی من چی کار کنم؟ باید از کجا رد بشم ها؟ اون طرف جاده گردمزاره، اون طرف هم خاکریزه وسط جاده هم که تو پارچه پنگ کردی خب من چی کار کنم از آسمون برم مرد کوچاق آمد جوابی به مرد کشاورز نداد و با بی اتنایی شانه هاشو بالا انداخت کشاورز مستصل و سردرگم ایستاده بود ناگهان اولاغی که پیشاپیش پیش دیگه حرکت میکرد کمی جلو رفت و خوش یا از کنار گندمزار کندو و به دهان گرفت مرد کوتاه آمد که منتظر چنین بحانهی بود چین بر پیشانی انداخت و با خش فریاد زد مگه نگفتم موازم اولاغات باشا؟ خدا که اینطور شد؟ من این علاقه رو برای جبران خسارتی که به من زدی برمی‌دارم و در کارش خودم بسش استفاده میکنم آره، این کارو می‌کنم. کدوم خسارت مرد حسابی؟ یه خوش گندم که ارزشی نداره. ارزشی نداره؟ من برای هر خوش گندم کنی زحمت کشیدم و هزینه کردم من در جاده عمومی راه میرم و به خاطر نشیدن توهینای تو مجبور شدم سر اولاغامو برگردونم. حالا تو به خاطر یه خوش گندم میخوای اولاغ منو با اون همه بار برای خودت نگه داری سنکیت من از دست تو به کارگزار عظم کاخ فرعون شکایت میکنم حالا میبینی تو نمیتونی در مور اون به من ظلم کنی فهمیدی؟ کار اون بیرون روندن دوزا و گردن گردنگیرهای مثل توه بنا بابا. مرد کوتاه قامد که از خشم خون به شقیقه هایش جهیده بود، به یک یکباره پرید و با عصبانیت شاخه درختی را کند و به طرف مرد کشاورز حمله کرد و اونو زیر ضربات پیاپی گرفت. کشاورز بینوا از شدت درد آهاناله می کرد میکرد و به خودش میپیچید. مرد کوتاه قامد از زدن باز ایستاد و الاغ های مرد کشاورز رو به حیات خونش روند و بعد هم درو محکم پشت سرش بست. مرد کشاورز که از این کار مرد قامد سخت عصبانی شده بود با همون حال زار به طرف در خونه مرد قامد رفت و چند ضربه محکم به در زد ولی مرد قامد در رو باز نکرد که نکرد من اینقدر پشت این در میمونم تا بالاخره لخره بیرون بیایی دارا باز کن اگه مالم رو به هم پست ندی همه جا رو میبرم مرد کشاورز هرچه منتظر بود مرد کتاق قامد در و باز نکرد و کشاورز بیچاره که دید هیچ فایده ای نداره با نومیدی به گوشه ای رفت و همونطوری که از درد ناله میکرد منتظر باز شدن در موند. چهار شبان روز گذشت و کونوپو یا همون مرد کشاورز همچنان پشت در بسته به انتظار نشست ولی مرد کوتاه قامد از خانهاش بیرون نیومد که نیومد روز پنجم کونوپوی کشاورز تصمیم گرفت به شهر برگرده و از دست مرد کوتاه قامد به کارگزار اعظم کاخ فرعون شکایت کنه بله کونوپوی کشاورز راه افتاد آفتاب تیز و سوزان صورتشو سرخ کرده بود و عرق از پیشانش جاری شده بود به نزدیکی کاخ فرعون رسید کارگزار اعظم فرعون به همراه خدمتگزاران دیگه در حال خارج شدن از کاخ بودن کناپو با سراسیمگی جلو رفت و با احترام تعظیمی کرد قربان قربان به دادم برسید چه شده؟ قربان اجازه بدید درد دلمو برای شما بگم من اومدم تا از ظلمی که در حق من شد، ای بس... مرد من عجاله دارم و باید برای بازرسی به جایی برم ولی قربان من شکایت داشت تو میتونی درد دل و شکایت تو به یکی از زیر دستان من که مورد اعتماد منه بگی تا اون سر فرصت شکایت تو رو برای من بازگو کنه جناب آمون آمون بله قربان امریک داشتی؟ با دقت به حرفای این مرد گوش بده و وقتی برگشتم درد دلشو برای من بازگوه اطاعت قربان دقیقه بعد کنوپای کشاورز همراه خدمتگزار به طرف کاخ حرکت کرد و تمام ظلمیا که مرد کوتاه آمد در حقش کرده بود مو به مو برای آمون خدمتگزار تعریف کرد و بعد هم از کاخ خارج شد حوالی زور بود که کارگزار اعظم کاخ فرعون از بازرسی به کاخ برگشت و آمون خدمتگزار گزارش کار رو به اون داد و تمام گفته های کشاورز کشاورزو مو به مو برای اون بازگو کرد کارگزار اعظم بعد از مکسی طولانی از خدمتگزار پرسید جناب آمون تو این مردیو که به این کشاورز ظلم کرده می‌شناسی؟ البرد قربان اون انجی پسر یکی از روایای جناب فرعونه عجب قربان جسارت بندر ببخشید ولی شاید شاید این مرد کشاورز داستان سرایی میکنه داستان سرایی؟ چرا باید این کار انجام بده؟ قربان شاید قصد آزار عذیت پسر رعیت جناب فرعون رو داشته باشه اصلا اصلا قربان از کجا معلومه که این کشاورز صاحب اصلی این همه کالا باشه؟ قضاوت کار مشکل و سختیه باید در این باره بیشتر فکر کنم. بله البته قربان کارگزار اعظم به فکر فرو رفت و آمون خدمتگزار اونو تنها گذاشت کارگزار ازم از پشت پنجره کاخ به غروب آفتاب خیره مونده بود و حرفای آمون خدمتگزار ذهنشو به خودش مشغول کرده بود. اون روز کناپای کشاورز شخصا به حضور کارگزار اعظم رسید و بدون هیچ ترس و واهمی و با صدایی رسا تمام ماجرا را برای اون تکرار کرد و بعد با صدایی که رگه های خواهش و تمنا در اون موج میزد گفت قربان شما از بزرگان کشور مصری و من میدونم در مقام بالایی قرار دارید از وظایف شما هم آگاهی دارم وظیفه شما اینه که مراقب رفتار مردم باشید. قرمانتان گردم. نام شما بهتر از هر قانونیه. پس دستور بدین تمام اموالم و از اون مرد ظالم پس بگیرن و به من برگردونم. کارگزار اعظم. خواهش میکنم. مم. شما، شما بسیار خوب و شیوا سخن میگویید من تا به حال کسی رو به خوشکلامی شما ندیدم قربان، من برای دادخواهی نزد شما اومدم و قصدم سخنبری نیست جناب اه... کنپو قربان، آه، بله جناب کنپو. چند روزی به من فرصت بدین من باید در این مورد بیشتر فکر کنم کنابایی کشاورز سری به علامت تصدیق تکان داد و با احترام از کارگزار اعظم تشکر کرد و با رضایت خاطر از حضور اون مرخص شد سمان می و کارگزار ازم هرچه بیشتر فکر می کمتر به نتیجه می رسید و بناچار به حضور فرعون ناب رفت و تمام ماجرا را برای اون بازگو کرد و بعد با هیجان از سخنوری و شیوایی کلام مرد کشاورز گفت سرورم این مرد کشاورز که کنوپو نام داره بیشک یکی از بهترین سخنوران دنیا من یقین دارم حضرت عالی از شنیدن سخنان شیوای اون لذت خواهید برد جناب کارگزار اعزم اگر قصد خوشنودی براداری رسیدگی بکر این مرد را به تأخیر بینده هست سرورم تأخیر برای چه؟ میخواهم بدنم این مرد چه مدتی در اثبات ادعای حرفش پافشاری می کند و دست از شکایت بر نمی دارد امر، امر شماست سفرم. تمام گفته های این مرد را با دقت و نو به مکتوب کنید چشم قربان، اطاعت و البته مراقب باشی در نبود این مرد زن و فرزندانش غذای کافی داشته باشن چشم قربن کسانی این رو هم بفرز تا به کش زرهای اون رسیدگی کنند. به همینطور به خود او هم غذای کافی بدهین چشم سرورم اطاعت در زم فراموش نکنید که این مرد نباید بداند جیرش از کجا می امر امره شماست قربا هم. بله فرعون نابکا از کارگزار ازم خواست تا همه این کارها انجام بشه و هرچه زودتر تمام گفته های مرد کشاورز و مکتوب و به نزد اون آورده بشه و باز هم تأکید کرد که مرد کشاورز نباید بویی از این موضوع ببره روز گذشت و مرد کشاورز که از تأخیر رسیدگی به کارش خسته شده بود دوباره به نزد کارگزار اعظم اومد و زبان به شکایت باز کرد ای سرورم نظرید در قلم رو شما کسی رو قارت کنم. اگه ادالت از راه خودش منحرف بشه و میزان ترازو غلط باشه اون وقت روسایان دست به قارت میزنن و نگهبانان گناهکاران رو توجیه میکنن و بلا مثل رود نیل همه جا رو فرا میگیره آیا بس... کار اون مرد اون در تو اثر کرده که خواهان مجازات اون هستی وقتی کسی که وظیفه داره مردم رو به رعایت و احترام به قانون هدایت کنه، دزدی کنه، پس دیگه چه کسی از هرج و مرج جلوگیری میکنه؟ رعایت قانون، دزدی، هرج و مرج، اینها همه در سر در... کنید، کنید. نوبت شما هم میرسه وقتی ظالم دار و ندارتونو غارت کرد، اون وقت درد منو میفهمی اگه به فکر مردم نیستی، حداقل به فکر خودت باش. کونوپای کشاورز به حرفهای خودش ادامه داد و شکایتش رو به شکلهای مختلف تکرار کرد ولی کارگزار ازم در برابر حرفهای کنوپای کشاورز سکوت کرد و چیزی نگفت بعد هم با قدمهای سنگین شروع کرد به قدم زدن در سالان کاخ و البته خدمتگزاری که در پس پرده پنهان شده بود به دستور فرعون تمام گفته های مرد کشاورز رو مو به مو بر روی پاپیروزیاد داشت می‌کرد. کنابای کشاورز که از این موضوع بی اطلاع بود در حالی که دهانش از سخنرانی زیاد کف کرده بود کارگزار اعظم و به پرنده شکاری که پرندگان کوچک و میبلعه تشبیه کرد کارگزار اعظم که دیگه حوصلهش از پرحرفی مرد کشاورز سر رفته بود به خدمت گزارانش دستور داد تا به ضرب تازیانه کشاورز رو ساکت کند اما مرد کشاورز زیر زاربات تازیانم هم همچنان لب از شکایت نمیبست و کارگزار اعظم و سردسته دزدان و راهزنان خطاب می کرد کارگزار اعظم که از این توهین سخت برا شفته شده بود دستور داد مرد کشاورز رو از کاخ بیرون کنند و خدمتگزاران به تندی کشاورز رو از کاخ بیرون کردند اما طولی نکشید که مرد کشاورز دوباره به داخل کاخ برگشت و باز لب به شکایت باز کرد این بار خدمتگزاران با شدت عمل بیشتری اونو به باد کتک گرفتند و مرد کشاورز نیمه حال از کاخ خارج شد به همان روز وقتی کارگزار اعظم و خدمتگزاران برای دعا و نیایش به طرف پرستشگاه در حرکت بودند مرد کشاورز راه و بر اونها زد کرد برای دعا و نیایش به پرستشگاه میرید ولی به داد ستم دیدگان نمیرسید رسید؟ جناب کارگزار اعظم. مطمئن باشید دعاتون مورد قبول خداوند واقع نمیشه چه میگویی؟ او مثل سیادی هستی که به به چیز دیگه ای فکر نمیکنه و با رحمی برای گرفتن آجاب. شکار مرخواد دام من به داقاریم از تو اومدم اما تو گوش به شکایت من نکردی و دادم رو ندادی ادالت عدالت چا... برای شما معنام و مفهومی نداره چطور خدایی رو که عین عدالت پرستشون ها من در اون دنیا تو رو پیدا میکنم و در برابر آنو بیس از تو چا... دادگاهی میکنم تو نه بینا داری و نگوش شنوا مان... آه یه بیهوده آه، او... مان... کنو کشاورز گفت و گفت و گفت ولی کارگزار ازم که گوشش از حرفهای اون پر بود با بی از آنجا دور شد ولی هنوز ندای دادخواهی مرد کشاورز از دور به گوش می رسید روز بعد کارگزار اعظم که از این وضعیت خسته شده بود و در زم متوجه شده بود که حق با مرد کشاورزه دستور داد تا کنوبای کشاورزو به نزدش بیارن، خدمتگزاران به سراغ کنوپای کشاورز رفتند اما اون که میترسید این بار هم با تازیانه از اون پذیرایی کنند حاضر به رفتن نشد و اصرار و اجبار خدمتگزاران هم راه به جایی نبرد و بالاخره شخص کارگزار ازم به دیدار کنوپای کشاورز رفت دوست من من شخصا اومدم تا تو رو به خونه که در همین حوالی دعوت کنم با یه خلصندی منه که دعوتمو بپذیرید و چند روزی مهمان من باشید خدا کند تا عمر دارم نان تو را بخورم و آب خانه تو را بنوشم بله کارگزار اعظم کاخ فرعون آنقدر با محبت و احترام با مرد کشاورز برخورد کرد که بالاخره دلش نرم شد و راضی شد چند روزی مهمان کارگزار اعظم باشه در مدتی که کشاورز مهمان کارگزار اعظم بود به بهترین نحو از اون پذیرایی شد و چند روز بعد کارگزار اعظم و مرد کشاورز به اتفاق هم به حضور فرعون نابکار رفتند ابتدا کارگزار اعظم ضمن ادای احترامی لب به سخن باز کرد. سرورم این همان مرد کشاورزی است که به او ظلم شده و برای دادخواهی نزد ما آمده. م... میوچلوتار مترس، در خدمتم سرورم من می دانم چه ظلمی به تو وارد شده و تمام حرفها و سخنانی که در این مدت بر زبان راندی به صورت مکتوب در اختیار دارم مکتوب قربان؟ هره به دستور من تمام سخنانی را که بر زبان راندی مو به مو مکتوب شد اما میل دارم یکبار دیگر خلاصی از ماجرای ظلمی را که آن مرد در حقت روا داشته از زبان خودت بشربم چشم قربان ورز با احترام و بدون هیچ ترس و واهمه با فساحت کلامی که داشت شرحی از ماجرای درگیری خود و مرد کوتاه قامت و برای جناب فرعون بازگو کرد فرعون با دقت به سخنان مرد کشاورز گوش سپرده بود و کارگزار اعظم هم با تحسین به مرد کشاورز خیره مونده بود بعد از اطمام سخنان کشاورست فرعون نابکای که تحت تاثیر فن سخنوری اون قرار گرفته بود سری تکان داد و با لحن آمیزی، خطاب به کارگزار ازم گفت ام. ام. حق با توست این مرد سخنور بسیار شیر دستی است من قضاوت در این مرد را به خود شما می سفارم سپاس سرورم اطاعت امر ای مرد کشاورز مطمئن باش هیچ حقی از تو زایع نخواهد شد و ظالم در این سرزمین راه به جایی نخواهد برد حتما همینطور خواهد بود سرورم من از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. دنابه کارگزار ازم، بروید و هرچه زودتر کار قضاوت را آغاز کنید. اطاعت سرورم. فقط سعی کن، هیچ نقطه ابهامی باقی نماند. فرده اون روز کارگزار دستور داد که آنجیب یا همون مرد کتا قامت و کنوپای کشاورز هر دو در کاخ حاضر بشن، و خود بر کرسی قضاوت نشست و رأی خودشو صادر کرد و به منشی دادگاه دستور داد تا رعی با صدای بلند و رسا قرارت کنه طبق حکم دادگاه جناب آنجیب فرزند رعیت جناب فرعون نابکا باید شش غلام مقدار زیادی اصل و گندم و تعدادی الاغ به کشاورز بپردازه من به این حکم اعتراض دانم اعتراض وارد نیست جناب کارگزان ارزم شما شما پدر منو رو و یکی از رعایه معروف جناب فرعون نابکاست شما نمیتونید در حق من ظلم کنید ظلم؟ این عین ادالته من برای دادخواهی به نزد جناب فرعون نابکا میرم او پدرم خوب میشناسه ساکت شو؟ هنوز رعی کامل قراعت نشده جناب آنجیب آن. شما به صد تازیانه هم محکوم شدید این دیگر بی اطالتی من از دست شما شکایت بکنم من اعتراض دارم من اعتراض دارم به دستور کارگزار اعظم آن جیب یا همون مرد کوتاه قامتو در برابر دیدگان مرد کشاورز به فلک بستند و به این ترتیب دادخواهی مرد کشاورز با اجرای ادالت به پایان رسید و او با خوشحالی اموالش را جمع کرد و به نزد زن و فرزندش که در انتظارش بودند به طرف دشت نمک حرکت کرد. افسانه دادخواهی مرد کشاورزو از کشور مصر براتون نقل کردیم این افسانه حکایت از دادخواهی و ظلم ستیزی کشاورزی ساده و بیپناه داشت که به دنبال پافشاری و اصرار در بدون هیچ سند محکم پسندی تونست حقشو از ظالمی بدزاد بگیره بله افسانهها علاوه بر جنبه تفریح و سرگرمی مفاهیم ارزشمند معنوی اخلاقی و اجتماعی هم دارند ستون و همراهان عزیز رادیو نمایش شما میتونین با تلفن گویای 162 تماس بگیرین و پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما در میان بذارین سامانه پیامکی رادیو نمایش 30775 لطفاً به ما پیامک بزنین و نظر خودتون رو در مورد افسون افسانه بگین همینطور طور میتونین افسانه مورد نظرتونو به ما معرفی کنین تا در این برنامه شاهد اجرایان افسانه باشین نشانی ما رادیو نمایش نقطه آی آر دادخواهی مرد کشاورز نوشته مارگریت دیون تنظیم برای رادیو زینت صالح بور راوی محروخ افضالی بازیگران مونا صفی محمد یگانه کامیار محبی حمید یزدانی عباس شادروان کرامت رودساز امین بختیاری کارگردان بهرام سروری نشاد افکتور نرگیس مساپوب صدابردار مجید آیمه تهیه کننده زهرا بدالله زاده سانه ها رنگی از زندگی اند افسون زندگیتون دلنشین و مانا تا افسانه دیگر پترود